از شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب الله و آله طیبین فاطرین و فاطرین و لحظ دائمه سعلا عزاق و مجمعین اللهم فرمه جمعی المشترین و يا هر سو بحث درداری روایت است که به حدیث علاویت مروفی ها زمان هم با عنوان زمانیت میگه. میگن مرادشون از زمانیت هم علاویت غیر از اما اون بحث دیگری اون وقت شد راجع به مسئله روایت علاویت که بعدها به صورت قائدهی هم در در نظم جده چهار قائد مرمو استادهای تو برس های روایی و سندهی و مصدری رویشون نفرمیدن دوسته سر سا پرمیدن که رواید محصوب و صدوره بلیشون فرمیدن بلی لاید که مختوب و صدور باشه در رواید مشهور از سینال آمد و خاصه و لذا ایشون از این را وارد شده حرض کردن راجع به این سنخ رواییاتی که دیروز من تاریش رو عرض کردم در میان مسادر عامه بوده در مسادر ما کلن نیامده و اگر هم آمده در کتاب های مثل شیخ توصی اولین بار آمده این به حدیث ازالفق المسلمان دیروز که من دیروز رو تاییر رو در مسادر ما نیست در مسادر زیلیه از امیر المؤمنی نقل کردن در کتاب مسلم زیل لیکن یک زیلی بتیدن که از اون مشکل رهاب شد توی کتاب بخاری این, این چیز اضافه رو نداره. اونجا داره ازرطق المسلمان علا غیر سنته یکی علا غیر سنته اضافه کردن که هر شکلی به حدیث بدن چون از که اون حدیث پیش خود احل سنتم مشکل داره این پیش ما پیش خود این که من یادم آماد در خونه داشتم فکرم که اینه توضیح بدن با اون متن پیش ما نیست با این متن دوبار پیش ما نیست در مصند زید آمده اشتباه نشد از شد که یک راه این راهی بود که امثال مرحوم آقای بجنوردی و متعارف در این حوزه های نجف ما هم بیشتر همین بود مرحوم آقای نایمی و مردم آقای آسیا و اینها قالبا مرحوم جرد آقای آسان اسمانی ایشان قالبا از همین راه که وسوخ داریم وسوخ به روایت هستم و یا قفع به روایت داریم بس همین طوری الان هستم و اصلا در میان اینها کسی ساواک فرمان مشی خوش سوانه سوان قدس الا نعشه چون واقعا تو اسانید اینها استاد زمان خودش خیلی کار کرده الا متعارف اون نبود اون راهی که رفت راه دیگری راهی بود که مرحوم های گرجی مطرح فرمودن و عرض کردم من از ادعای مشایخ شیعهایی ایشان و بعد از خود قرآن هم شفاهش میگم حاصلش اینه که اگر حدیثی بین اهل مشهور باشه و این مرد نفر میدارن میشه رو قبول میکن. این هم دوم که دیروز از کردیم که باید شواهدی بر شهررت اون رو باید مطود باشه. یه مطلب دیگری هم یکی از شاگیز های در این کتاباب شماغلده که من احتمال میدم اصل این مطلب با هم قای بروشری فرموده باشن رو ما فعلا جای ن و و اون عبارت است که مردم شیخ طوسی در بحث تعادل تا در کتاب قدده اوواده. دیروز که ایشون رو خوندیم و توضیحات رو اعز کردیم که معموم شیه توسی اصحاب ملد فرق فاسده رو دو بار در کتاب عده آورده نه یک بار یک بار تو بحث حجیده خبر آورده اونجا میگه اگر اونها چون ثقاتا عمل کردیم مثل تفهیگر مثال بودن یک بار در چند سفر به چاپ جدید هم شد مثلا این چاپ جدید رو باید دا هباشی داره ایس در سبه ایس در سبه چاقه قدیم سه تعارض رو مطرح کردن اونجا هم متعرض اصحاب مذاهب فاسده شدن لیکن در اونجا دیگه وساقت رو نیگه بودن در اونجا از ایک راه رفته که اگر اصحاب مذاب فاسده روایتی رو نعروب کنه و معارض در شیعه نباشه و مخالفشن قول بر خلافشن منعرف نشده باشه ما اون روایت قبول میکنی. این دو چوی بحثه تا آرز اسم سکونی رو در اینجا بردن در اون بخش اول اسم سکونی نیست اسم سکونی در اینجا میزن واقعا اصحاب ما جا, جا شده این دو تا بحث رو با هم دیگه مثلا ایشون فرمودن که مثلا خود یکیم که هم از هر های بروژه و بر الله همه عمل اصحاب به اخوارها اولا کانه به جهت وصول به سقه خود شیخ ندار این مطل رو این استظهاریست که شده خود شیخ این مطلب ندار این مطلب تو اون بحث اول داره البته عرض کردم الان فعلا در کتب رجالی ما وقتی سکونی توصیه میشه از همین عباس شیخ توصیق یعنی الان مشهور رجالی ها که میگن سکونی سقه از خب در این عبارت شیخ توصی تصریحه و دیروز همه کردم کردن مرموم آقای توستری قدس الله نفسه تا اونجای که من دیدم اولین کسی که اعتراض کرده که این مطلب درست نیست و عبارت شیخ توسیقش نیست نمیخواد دیگه چون سقرست و متحرزن این مطلب شیخ این نیست این یک مطلب من دیروز ارز کردم توضیحاتش رو ارز کردم موضوع که یک مشکل دیگه که در اینجا هست اون اینه که بله این روایتی که در اینجا ما به اصطلاح الان نقل شده باز یک مشکل دیگه داره و اون اینکه باید یک اضافه دیگه هم به این مطلب بکنیم و و اون این که مطلب رو که شیخ نقل کرده این است که از امام عمل بکنیم به اون که رواه ها ان علیه و اینجا اینطور بگیم و یه اون که به وجود ها در ملاد ما رواه ها ان النبی ایران این مشکلی اینه چون این ببایت سماره ان رسول الله ان علیه نیست به اون مطلبی اون که شیخ فرمونده فرم امام فرمونده فرم فرم رو الاما رواه ها ان علیه این به ما نهنفی هم نمیخوره مشکل ما نهنفی اینه وقت بگن نه ملاکش هست حالا این مطلب مال خود یا احتمال میدیم از مرحوم آیه بورژوین افضلو باشه اگه این مطلب از آیه باشه خیلی عجیبه چون این که گویا رسیده که مرحوم شیخ داره خصوص مادر علیه علی چرا توی رسول الله داره و من توضیح دادم دیروز اشاره کردم امروز هم توضیح مختصری ارجو کنم اولا ظاهر من دیگه سوزی هر سر ما در سیر تاریخی روایت سکونی که میبینیم یه نوع شزوز انفراد میبینیم تا زمان ابراد نهاشه یعنی خود سکونی شزوز داره شاگرد اولشه خیلی مشهوره به بس اسم سنده دار نمو گیره نوفلی این هم شزوز داره تا ابراد نهاشه بعد از ابراد نهاشه که تا سکونی جان رفته یعنی هفتات سال هشتات سال بعد از تدوین کتاب ناگهانی کتاب در قم مخصوصا جا میافت اول اونجاییه که جا میافت در قم و معظم نسخ هم همین نسخه قومی است این خب برای ما ابهام هم داره واقعا هم که یک کتابی مثلا در حدود 70 سال خیلی جا نیافت بزرگانی که ما داشتیم در این طبقه مثل ابن حبیب عمر عاصم اینا رو نعرف کردن عمر صفوان بزندگی اینا همه هم حدیث شناسن و خیلی فوق العاده مخصوصا اگر وفات سکونی 180 باشه چون ما نبیدیم در مسادر ما وفات سکونی ذکر نشده در کتب آمنه 180 آمده اگر ما این مطلب قبول بکنیم بزرگان درجیه که اصحاب ما که نقاد حدیثاً با اشون معاصر حتی یک حدیث اشون نرمه کنیم یک دانه رواز سکونی هم مثل ابن ابی عمر مثل صفحان مثل بزندی این طبقی که نقاد روایات هم. من ارز کردم از سال 150 طبقه اصحابی که ما دارین اضافه برنی که خودشون راوی از این ما هستن نقاد هم هستن پالایش حدیث هم درزداد که در اسطلاح ما مکتب اول بغداد توضیح مکتب اول بغداد از سال 150 شروع میشه تا حدود سال 300 310. این مکتب اول بغداد خسادس خاص به خودش داره پس به یک مشکل روایت سکونی اینه شیخ طوسی بعد از 20 سال بعد از عمل اصحاب مطلبی رو گفته من فکر میکنم سر است می‌گه این مطلب با اونجوری قبول نکرنم احساس اختیار هستگاری فکر. فکر میکنم شیخ می‌خواسته این عمل 200 ساله رو توضیح بده یعنی شیخ مخاطب چرا از زمان ابراهیم هاشم اصحاب عمل کردن به کتابشون؟ می یور رو میگه. میگه جایی که اصحاب روایت ندارن قول به خلافم نیست که من دیروز عرض کردم مرادی این که این که اصحاب روایت نزر نشه ناظر مسئله قم باشه اول به خلاف هم نیست مرکز بغداد یعنی یک مطلبی که در بینشی البته اون زمان مکتب هنوز همونطور شکی نگیرید زمان تکونین یعنی کسانی که دنبال اقوال فقها هستند که بعد شد در زمینه مکتب بغداد شیخ مخت بگه که بنای اصحاب در این حد بوده در روایت خب حالا اگر فرض این زیر بنا درست یعنی فرض کنین که اصحاب عملا هم همینطوره یعنی عملا هم آنه که از سخونی رو باید داریم از خواب ندارم و ما روایت دیگری هم از سخونی داریم که مخالف اصحاب و اصحاب از خواب و از خواب ترخشی از اصلا کندم یه ازده هم اوگردن حالا ترخ نکنه حالا او ممکنه اوگردن دقیق میفرمون ما الان خوب تعمل بفرمویم اگر به ما بگن در مسئله از روایت نبوده، فتواه هم نبوده باید چه کار رو ما میگیم الان پیش ما اینطوره. میگیم تو این مرحله برمیگم به اصول عملی لذا در حقیقت اگر بگم مرموم های توستری توضیح نداده. اگر عبارت شیخ رو به ظاهرش نگاه بکنیم این در حقیقت معنیش این که شیعه به جایی که به اصول عملی برگرده به راز سکن برگشه لذا نه چونین در نیاز که سکونی سقه هست نه در نیاز که روایتش خود جهده. نه به ساقت سکونی و تنبال و به جای که برگردیم شما به اصول عملی برگردیم در روایت سکونی به چیلی شبیه قادمی اصول مثلا نیشت ارزش روایت سکونی در حد دو اصول عملی میشه حالان یک احتمال یک احتمال دیگه اونی که نه این باشه که چون در سابق حالا در شاهد بحث, بحث دیگه من یک مناسیت توضیح میدم این در میان اهل سنت تو حدیث هم بوده توی اصول هم بوده توی بین ماه هم بوده شاید باقلایی هم باشه یه درجات که برای حجیت تصور میکنن ماه الان الان درجات تصور نیه هم مرمون استاد اوالکوین دیگه بحث و صحیح و حسن و موثر نمی معتبره چون نظرش که این بود تع حجیت یا خبر رو میگیره نمیگیرگهن بگیریم که معتبرگهجا مرت میشه. این تسییم بندی و یاوق ماسینا نمیخواد حسن و صحیح و میریار محت... و هجیت چیزیه؟ اون میریار حجیت یا در خبر ح سر در خبر نیست؟ اگر در خبر لنظر اگر در تغییرات متصل ایشاننگگاه فر در لحا که اون زیاد روشون میشانسیید. قدس الله و از دل هایی موثره تو فلان ببین دوباره این بحثا نبودن این تقسیم بندی موثقه و مبثقت عمل بکنیم حسنت عمل بکنیم خب این یه تفکر یه تفکر نه درجه بندی مثلا میگه این حجت باشه مثلا مادام لیسلو معارض حجت از مطلقه احتمال داره شیخ هم نظرش این باشه که بواسطه سکونی درجه وسطایی در حجیت اگر معارض نداشته باشه حجت باشه معارض نه؟ و نه مثلا روایات زراره و دیگران مطلقاً حجشه به واسه با عدم المعارض حجشه این هم دو تا احتمال یه احتمال هم همونیست که الان در کتب رجال متعارفه میگن مراد شیخ این بوده که سکونی سغت حسیخ کرده این همونیست که الان در کتب رجال متعارفه که از این کتاب خوندیم برسون که اینا سغت این احتمال سغت ما باشیم و عبارت شیخ هیچ کدوم از اینا این میخواد. چون شیخ وافلا کردن دستمون. چون شیخ میگه لقب به صادق علیه السلام خودت ختم می‌کنه. یعنی شیخ مشخصاً ما تعبد داریم. امام صادق به ما فرموده شما تعبدا روایت سکون قبول بکنید. اون دستور تحلیل ما روشن شد و اونه که مشهور فهمیدن، با اینکه ظاهراً صحیحش هم که ظاهر واژه شیخ لقب ول صادق علیه السلام حالا اگر این رو ما بگیم که ما در یک تفسیر دیویس ساله یه هست از زمان ابراهیم محارشت و زمان خودشون اینه از زیگه دیویس ساله ما در این فتره دیویس سال این حدیث رو ندیدیم مشکل کار اینه ما در این فتره دیویس سال این حدیث رو که امام صادق پرموده باشد ازا ندارد بکنم حادثتون لا تجیبین و حکم رو و رویهن فنزو الان ما روغان علیهن الان نداریم شیخ هم از کجا نرقل کرده بی هیچ رجم ها متعلق نید روچن شد احتمال هم هست احتمال هست, احتمال هست. مثلا اگه برفرد درست بوده برعایت بوده این دلیه فکری بوده فرصلا اوائل امامت امام صادق. اگر خودت ببینی چون از علی بن حبیب این حرفین قبول نکن. درحالی که دیگه خود حضرت نشر کردن با علوم نشر شد، دیگه برداشت شد این مسئله. یعنی یه چیز موقتی بوده، برفرض هست اگر بوده این احتمال هست اون مراحل اولیه‌ای بوده. مثل بعضی از که متصدی مرجع نشدن رساله میگن بر مثلا مشایخ ما مراجعه کنید. مثلا دهنه‌ای که ادعای شرع میگن بازی باشین تا این احتمال داره که هنوز اوایل کار بوده. امام فرمودن که چند دوره اله مارو و انعلیه بعدشون نش داده شده آثار شیعه منتشر شده پخش شده آمده دیگه نیازی به این امر موقت ندوده استفاده در وقت زمان بدل هیوله تو در بدل هیوله چه تلف نمیشه بدل هیوله بدل خاصی لازم خودم قبول ندارم بدل هیوله بدل هیوله چه تلف نمیشه انسان بهش نمیرسه اینجا مشغول بین فقها زمانه اشون قبولی کن دایی رو شای نداره. مثل اینکه یک انگوشه نخستن تو چالس. قطعا هم دونیم چه افرادیم بیش نیست. وقتی لند بیم پایش، انگشت تلخ نشده هست. تا چالس کش نمی ریزیم. این اسلام دیگه هم که بدل هیبرد. حالا اینجا چه این شبیه بدل هیبرده بوده؟ هم بیان که اقوال نرسیده به اهل کوفه، فارموزند که موقتا این کار بکن. و علاوه تغذیه باز تنزل و هیتابو. تعدی از مورد باید به ماروها آن علیان درست نیست ان نبی درست نیست این که اینجا مامده ماروها ان آن ملعه احمه این هم درست نیست چون من اعرض کردم زواهر این عبارت پنظورو الان مارو این خطاب است به شیعیان کوفه نه مطلقه خود سهم این مطلقه یا خاصه باصه باشن دیو ذره ذات ارث کردن اصولاً در اصطلاحات اهل سنت کوفه رو مکتب امیرالمومنین میذارن در بین اهل سنت اون اشیوه چون موسسه دان از معروف و درجه اول که به کوفه اول عبدالله مسعوده بعدم علی بن ابی و لذا اصطلاحی دارن وقتی صحبت مکتب مدرسه کوفه میکنن اصلا مدرسه کوفه مرادشون مثلا ابو حنیفه است ابو حنیفه و بزرگان کوفه اخصاص به شیعه نداره در اسطلاحشون میگن کوفه متاثر است به فقه و تفکرات عبدالله عمد مسعود علیه نبی طالب پس هنزرو یعنی اهل کوفه نمطلقن الا مارغوه و علمای سنی و بزرگان اهل کوفه هنه علیه شایدم اینجا این سیغه جنگ آمده به نفر عام مجموعی باشه نه عام استقرایی مثلا ما در اصول ارکان در لغت عربی ما لفظی برای عام مجموعی نداریم اصلا عام مجموعی عامم نیست این توضیحش هرخه مثلا با قرائت ممکنه یعنی ببین مثلا 5 نفر 6 نفر ده نفر در کوفه میگن علی که در کوفه بود اینطور فرض چون ارث کردم به خاطر استسالی کرد تحقیق در کوفه بودن این سه سال منشع شد که اده زیادیه اصلا به طور کلی جامعه اسلامی اون روز افکار علیه المعنی نقرد بکنن و کلمات ایشان رو و اون چیزی که ایشان به عنوان فرد داشتن این متعارف شد تو کوفه وقتی امام میفرم رو روی الان مارباوها ان علیه دعمال فرمیدید؟ ببینید اونی که از علیه المعنی طالب رواید کردن در زمان صدور این روایت معروفه کتابی که از امین نقل میکرد، می‌کردن که خیلی, خیلی معروف بود این خیلی هم داشتن اون رو البته تأسف امام صادق خیلی ندید این که خیلی طولانی درگی اینجوری همونجا متألف شدن کتاب ال قضا یا وسنن الاحکام این کتاب احتمالاً حالا پس از علی رومی سال 37 به کوفه تشو بردن بعد از جنگ جمان در بصره البته اون در مدینه بودن اسباری که بودن و تصادفاً روزگار همشون در 5 که خلافت ظاهریشون بود به هرجام مشترک نشه، به خصوص این درگیری‌ها 3 سالم کوفه بودن. در حالی که از 37 به کوفه تشریف تا چه که شهادت ایشونه. بگم حالا این کتاب در این سه سال طرح شده؟ تا سال‌های 60 70 احتمال داره دقیقا ما این کتاب رو نمی‌بینیم، اما قطعاً این بوده. یعنی این کتاب قطعی خیلی بزرگه این خیلی بزرگ که مؤلف اصلی کتابم چیه؟ زیادی ها میگفتن این کتاب علیانه اهل کوفه بعضی کتاب حافظ بن عبدالله اعره همدانیه هم. بعضی کتاب ابی عبدالله بن علی رافع الی آخر بعضی من نمیخوام از این بحث بشم کتاب هم تا زمان مرحوم شیخ کلینی یا شیخ صدو وجود داشته مثلا اصحاب ازش نقل نکردن توضیحاتی که من سوال یکی از چیزهای بسیار معروفی که روابان علی این کتابه و باز هم توضیح ارز کردم در دنیای اسلام نواهای صحابه از اجدادشون کتابهای نور کردن ما اولین کسی که رسمن حالا آیا درست هسته نام بحث دیگری ایست از امیر الماملین بانوان نوریشون حدیث داره همین کتابی که الان داره به ها معتبر اجماله چون زیدیه مخالف هم داره اما اجمالا پیش زیدی ها معتبر اجنان مصند زید یا المجموع الفقهی بهش بشه المجموع الفقهی میگن حدود هزارت حدیث کمتر از هزار حدیثه زید انا عبیه سجاد انا عبیه روسیل انا علیه بعضیشان هم قال رسول و با قال علیه این هست این اولین کتابه در میان شیعه که قبل از امام صادر البته این کتاب خیلی وضع سندیش مشکل داره چون اون راویش مقداری گیرهای کلی داره حالا من وارد اون بحث ها پس یک مقداری خود اهل سنت حتی خود ابو همیت اهل سنت علیه نقد کردن الان در کتب اهل سنت وقتی آراء صحابه نرم میشه موزن آراء علیه نره مال کوفه است. اصحاب کوفه ایشون. پس در حقیقت حضرت روشن شد مثلا چیه؟ حضرت صادق می‌خواستن بفرماین که اگر شما البته اینو الان نشأت نمی‌دین من خود من از این بپرسین سلام مصادرانی می‌گین فهنجی نگین کلام رو اثر الا تقدیری صحبت کن الا تقدیره که این مطلب درست باشه الا تقدیره فرض صحت این مطلب این کلام مراد خصوص ما رواه عن علیه نه. این که اینجوری نشره عن علیه ما را همین معنیه صحبت آیمن مطرح حادثه ملات ما روت که ما رووانندبی موجود است اصلا ملاش ملاش بحث منات بررنگی جایی بحث ملاف نداره این یه تاریخ معرگیت داره یک وضع معیت جایی ملاق نداره که اینمللاات اونجا موجه پس اگر این مصالله رو فر شما های برژری در تقریب خجیت مثل انتبار سروزده باشد گفت توع کن که اینها مشکده پس پس این به پیش ما یک اصلی نداره دو این که مثلا این اهل سنت هم مثلا تلقیه به قبول کلی شده این هم روشنه مشکل ازاکش نه یعنی مشکل کار فقط پیش ما نیست از کدم حدیث و با این متن. حالا این متن دیگه هم داره شبهه داره که این نکنه متنش اون باشه با این مطم مغیرکتن شعبه نقل کرده از از سناراتیم در جوندار از از اون منحرف هم و سماره از موقعه قاتل تره صافا دست قتلشوی شده میگن در ایام ایام ایام امارتش در بخصه هشت هزار نفر رو سر گرده خیلی بخشتناک یعنی به گاهی بی جهت حتی افرادی که ظاهر و هم مثلا میاد تکات داده و مشبه نماز بوده باز بوده سرشی بگنه خیلی فوق العاده که حتی رو میگن زیادش با پیاخت خودش قاتل خودش این همه افراد کشی گفته نه اگه خوب بودن که بیرم بهش بدم بودن که اشارم بر از این که یه موجود وحشتناکی در خونخاری و خونویزی نسبت به دو تایف یکی شیعهی که هم به قول خودش حروریه که اصطلاحاً بشونگم خواله در هر حال من وارد اون بحث نشم اون دیگه دیگری بله در این که ایشان اجمالاً وضعی که داره وضع روشنی نیست که جایی بحثی نیست این مطن این مطنی که الان برای شما کندم منحصرم توسط سمرتون جندر رسیده از اون برم از کرد مثل سمرتون که حاکم بصره بوده و عادتاً در ایام حکومت شدشاد گفته عادتاً این, این دیگه عادتاً در ایام حکومتش گفته این خیلی بعیده که مثلا یک نفر فقط راوی داشته باشه فوق العاده به نظر بعید میاد. این خیلی برای ما تعجب آوره که مثلا معتقد بشیم اونم حسن بسری از طرف دیگه هم از اجایب کار باز در این است که به حسن بصری نسبت داده شده که اصلا مستقیما از خود سماره نشینده رو... یا هم شنیده پای منبر مثلا شنیده اینطوری باشه و یکی از اجایب اینه که خود حسن بسیه هم باز از خود سماره نشینده یعنی ما با مشکلی که این حدیث پیدا میکنیم این نهره ای انفرادهای خیلی عجیب غریبه یعنی واقعا یک چیز غریبی در اینجا. جمعه پس و به لحاظ بعدی البته از کردین در کتب اربعهشون آمده یعنی در کتب اهل سنت به استثنای سهی بخاری و سهی مسلم که این حدیث رو نیورده اما به اصطلاح بقیه سنان اربعه نسایی و ابو و ترمیزوین ها این حدیث نهارده کردن و به لحاظ سند هم ارز کردن ترمزی به اصطلاح گفته حسنان صحیح البته من نسخه چاپی خودم رو نگاه کردم حسنان صحیه این کسانی که از ترمزی نقل کردن تو بعضی مسادرشون اینچنه حسنان بعضیشون حسنان صحی شاید خود نسخه ترمزی هم اشکال داشته باشه که مثلا و ارز کردم که در کتاب حاکم نشابوری مصرک هم حدیث آمده نوشو صحیحه اون شرط بخاری، لكن خود اهل سنت نشان ندیس على شرط بخاری. حالا شرح این مطلب شاید واقعا سجا نباشه از بخاری یا نه؟ و چرا حاکم گفته صحیحه على شرط بخاری؟ اینو بزن ذهن دو جای دیگه، اینججا فایده نداره که مطرح شده. علاوه، لا حیام در که علی شرط بخاری. حالا شرط بخاری تصدیق کرده. من دینید گفتم خبر ندارم گفته صحیحم علاشرط بخاری نه گفته صحیحون اون نمیگه علاشرط زهبی رسنش نیست تو گه علاشرط صد اشتقایی زهبی علاشرط نمیگه میگه صحیحون صح. نمیگه علاشرط کیو گالی اگر مثلا مناخشه باش داشته باشه اینه که میگم گفتن ليس صحیحن علاشرط بخاری این رو دیگران گفتن نه از زهبی ناره نمی کنم هر سو با من باساتون من کم د اگه ری تسییه کرده لازم نیستی شرده بخوای باشه حالا اون بحثشییه وقتییه ذ توضیح بم که چرا چراواه؟ چون بخال یه جا از حدیث حسن ان سوار دانش از ش سرشین اما اونجا رو چ میگه س ثابت بودی اینجا ثابت نیست اشکالش برها والین بحث نشیم خود بحث خاصیه پس این حیث پیش خود اهدون نکن سریه سریع نیست این راجع به صند حیث و به اصطلاح تاریخ حدیث و مصدر حدیث اما مطلب دیگری که هست راجب به مصدر است. از کردم به استثناء بعض از مصادرشون حتی تروت به جای توعدی در مصادرشون علالیت ما اخذت حتی عدی داره این مطلب یعنی مطلب علالیت ما اخذت خوب به فکر بکنید این سر کاری بوده که در این 1400 سال فوقهای سنی و شیعه رو این حدیث ما داده. ما این مده دیگه یا ای آیه قرآن داریم این حدیث هم داریم اینالله الله رو کنم انتا از دل امانات لا اهلا یعما رو کنم چرا با این مده روش به اصطلاح کار کردن چون خصلت این مده اشتمال بر کلمه علاست حلالیده ما آخره تغیرستانم دید؟ چون از بحث این رو بحثی شده کلمه علا نازر به حکم وضعیست اون سبوت در ذمه یعنی کلمه علا مجرد تکلیف نیست و ما این در تلال بحثه سابق هم یک توضیح دادیم حالا فقط یه اشاره ها آبر رد میشن مثلا گفتم فرس کنه عدلهی که در باب روزه هست هم من شاید نمیم کنم شرف علیه سمون اقیم و اینا همه به سیغه امر درست شون از سیغه امر در نیاد در زمه. در میاد بعث یعنی وجوب رو همون بعثی میذاره که طرف رو بازار بکنه اما حالا اگر نکن این زمه شهست یه چیز دیگری یه یه قسم کنم لذا مثلا میکن قضا به هم رو اول نیست و هم به جدیده اگر در زمه باشه همون هم رو این دارن که ای من شرارا مطرح کردم و تازیم نده و صحبت زیادی داره خود تکلیف خب البته یه هست که خود تکلیفی نفس دینه مثل دینه زمه داره یه روات هم داریم بد نیست ولو از پتورش هم هم من هم این نسخلات دینه لیکن معروف اینطوره اما درواب حج معتقدم که اگر کرد خود کرد بعد از سوی به ما بشه یعنی در خصوص حج آمدن زمه فهمیدن در خصوص حج اولا خاطر اون روایت خسامیه ان نعبی از رکست فرید سال 8 و کبیر بعد فرمودند این که ارعیتی خطاب پیغمبر اون زن است لوکان علا عبی که دینون لکنتی او قالت نم فقال دین الله و همی از هشت تعدیب به دین شده قیل از این جهت که در رویات خسامیه است هم اصحاب ما نگه توی فروع ارونالت پس این بحث داره اواخه فرو استعداد اینجا داره هم در طروع حج به هم به سازایی دیگه متعرض شدن از حال که چون دلیل حج اینه للا الان لام و این لام و الان, الان اختیزا میکنه که از تکلیف بیشتر باشه زممه هم باشه ولی ازا اگر حج انجام نداد اصل به ما مثل بقیه یک دیون اصول امای خارج میشه وقتی به همین هم معتقبن اگر حج نظری هم باشه همینطور شما میگه لله علیه اینه افعا یعنی از کلمه لام و الان ازاتیه بر تکلیف حکم وزیه هم در میاره که اون مسئله زمه باشه و تعلق زمه باشه پس ما یک خطاب اینالله الله رو کن انتاعت دل امانات داریم این رو ازش دست هم میدن شد ما یک عنوان عدلیت ما اخذت دارید این رو ازش زمان سن این صرف این که این قدر اصحاب و یا اهل سنت و این حدیث عدلیت کار میکنن چون درش تحبیر علا داره عدلیت ما اخذت که ما اون چیزی که گرفته این رو سرمش ثابت البته ما از این حکم وضعی ممکنه از حکم تسریفی هم در بیاریم اما این ابتداا و حکم برزی میکنه ممکن است شما بگین این الاب به معنای الزامه میشه مثل, مثل ان الله یامرکوم الامانات از اینالله الله یامرکوم ان تؤدوا الامانات الی اهلها زمان نفهمیدن این سر اتکاز رو می میشه از اون فهمیدن که مسئله ای شما تاکید دارین اماراتی از باره امانات طلب شد خب دیگه تکلیف نداره نیست که سوال اندو به موضوع امانه طلب شد اما وقتی علاقی از آمد میگه اگر طلب شد بدلشه بده این فرقه به این دوتا پس ممکن است شما میخوایم یه باشای بحث داشین هم بحث لفت مخصیم رو ما انجام میریم هم بحث ظهورات یک این که اینجا و تصادفاً در مهم مشروعی که از این شده حتی تاعدیه مثل نمای عما رو کنند تو از دولند مثل همونه همون از مثل همون. چطور شده از اون زمان نفهمیدن؟ از این یکی زمان میدن. دکتر اوشاش گفت. چون تو اونجا به صيغه دعث به تعبیر به از اون زمان نفهمیدن. شما مکلف این امانت را دو 2 سال از برد تکلیف نداره. ببینید چون تکلیف با زوال به وجود منتفی میشه. هم مثال معروف یک مرده بود بود به کینال گور خود مرده خب ایشو سن ندادی موضوع مکلفی واقعی با دوزیدن امانت دیگه موضوع منتقی شده دیگه جایی برای عدا امانت نیست اما وقتی تعبیر آمد علالیت ما اخده. این کلمه علالیت ادعاشون اینه خوب دخلت بکنیم ادعاشونی که علالیت مفاده انت... تا عدل امانات نیست این مفادش ثبوت در زنبه است تعلق به زنبه است یعنی اون چه که تو گرفتی به دست خودت این ذمه تو قرار گرفت الان ما این بحث هم هم تازهی در قوادی المعنده شروطه اونجا کلمه این بود که کلمه الاز که آیا از کلمه این چی در میاد تکریف سر حکم وزیگ سر تکیف و اینجا این هم همینطوره پس یک نقطه اساسی این روایت اندالله عدلیت ما اخیردت حتی توعدی ارز کردم در متون اهل سنت مطرون مشهور که این چهار مصدر اصلی مصدر و مصدر بعدی دو مرد میدارن توالدیهو و توالدی توالد بجنوری کاریه مطمئنه کردن و, و ظاهرشون که فرق نمی حالا من در اینجا اینطور میگم ببینید در اون کتاب به حدیث سماره این در کتاب صفحه 119 و دو سه جا متعرض حدیث علالیت شده این کتاب نخص و رایه از علمای حدیث شناس، حنافی است به اصطلاح حافظ زئیعی به اصطلاح بسیار بسیار کتاب خوبی است در شناخت حدیث اهل سنت به فوق العاده ای چه انساقه دارد کتاب ببینید حدیث حسن سماره سمره مرفوعا مرفوعا به اصطلاح اهل یعنی سماره نقل هم از رسول الله مرفوعا در اصطلاح ما یعنی مرسل در اصطلاح اهل سنت یعنی مسند الی رسول الله خیلی هم باز در عزیزی عباعت عوضت خیلی من مرسله مثلا نه مرکوه اصطلاحونه نه ان رسول الله وقتی صحابه بگن مثلا ابن عباس مرکوهن ان علیه مرکوهن اصطلاحشونه یعنی ان رسول الله رفعه و النبی. اگر کلام خود سماره باشه میگن موقوفن این اصطلاحیه مثلا ان سماره موقوفن ان سماره مرکوهن این مرکوهن رسول الله ان علیه ما اخدال حت تا تعدی قال ابن كتاب استدلال من در بخش عاريه اگر شد اون به اصطلاح زامنه اقرام یعنی فرامت یعنی قال یکی از کسانی که من نقل کرده ابن ابي شیبه با فقال فی در كتاب ابن ابي شیبه اینطور اومده این از قدیم که حضرتون از متعرسدن تربوه به متن حدیث اختلاف معناش داشتن به الها صاحبه به زیادت الها توعدیه موجبون لرد لعین به حسب ماکانت قائمه خیلی لطیفه میگه اگر توعدیه باشه داده بر زمانش میکنه توعدیهو باشه نمیکنه میگم این کلمات علمان ما حالا با این که خیلی علاوانو بعد از اونا بودن هیچ تنبه پیدا نکردن که خود اهل سنت هم در معنای حدیث بحث اساسی دارن به لحاظ مکنش چرا؟ چون میگه اگر تو عدیهو بود این مثل اندالله ام یعما را کنم تو عدل امانت ام الاهل هاست این زمان خشنهی این مثل یک حدیث دیگری اینجا هم نهارو کردن ابن ابی هوریوه قال قال رسوله عدل امانت الاه من اعتمانه بید عدل، ادبه شیغه امره. این توش باز فهمیدن. توش اشغال ذمه و تعهد ذمه فهمیدن نشده خوب روشن شد. تو میخوام بگم. عدل امانته الی منعک و لا تخن من خانک. یا روایت دیگر الاریته موعداس. ایشون میگه: سهو به زیادت رو ها موجب لرد دل عین به حسب ما كانت قائمه. که قولی علیه السلام و موعداس. من روشن ایشون میگه اگر من حتی تو ادیهو باشه زمان پیش نمیاد مثل الله یعمرک از فضل اماناته حتی سو ادیهو یعنی تا خودش برسونه اما اگر حتی سو بود بیان نکرد خودش حالا اگر خودش هرلطت خود بدنش برسونه خوب نکته ثانيه رو دقیق کن که آيا متن حدیث تو پس یک اشکال دیگه اصلا خود محنه حدیث در سندش گیل در خود احلی سنت گیل داره. کی به در با زمان میخوره که حتی تا عدیه باشه؟ اگر حتی تا عدیه ها باشه سیاقه، این فرحه سیاقه العاریات و معداد گرده خیلی عجیب هست. خب سیاقه آیه مبارکی بگیدید؟ اینالله یعما رو کنند تا عدیه الامارات الانها. آیه می چطور هم تعدیل امانات الهی اله؟ اینجا هم او چطور در اونجا شما زمان در نیاوردین، زمانت فقط در آوردین؟ اینجا فقط تاکید در میاریم. یواشا شو، یواشا شو. حتی یه درس غیر از سر روایت راجب به متن روایته که اصلاً میشه ازش زمانت رو در بیاریم یا نمیشه در آورد؟ روایتی که هست در مصادر اهل سنتی کهش همینه که اینجا خوندیم مشون در صفحه 119 آورده، چه دیگه هم آورده و برای صفحه 119 نکته دیگه داره و یه حدیث دیگه هم هست که اصحاب ما متأسفانه ذکر نکردند این در مسائل در مصادر اهل سنت آمده متن حدیث الان چون وقت تمام شده من فقط متن حدیث رو خوندن متن حدیث این اینطوره لا یه لوله آهدن، این یه آخه ما لعقمیه، لا و فر این شبیه اتا تو عدیه این متنش اینجیه، متنی که دا ابو داوود نارکه زیر نزیم بله، متنش اینه. قبل زید زیگنب ثابت ایناها لیل تلخند. بله خوابش بود زیده نسو فجا اماره پر نهاز فا اخده سلاح از سرش گیره فقال له رسول الله یا بار ای آدم خودشانست مثلا تا لقد نمته یا نمته حتی تا ذهب سلاحو تو مقال صلی الله علیه واله من لهو علمون به سلاح آدال غلام این بیچاره نیست فقال اماره انه اخد تو قال فرد دهو خ من نهصل الله عليه یاارت و الممه پررسنده بشه و ان مط او لاعبا او جااددن.عمده اینه که ان اخذه او فرات ده او البته سنعل هر مشکلات دا من متعرض بحثه بحث خواستیم در این کتاب در صفحه 168 ۶68 و یه بحث راجبین ج کرده که الان من نمیخوام وا بحثش بم. البته این روایت هم باز هم زمانت ازش در نمیاره این دو تا روایتی که تعبیرش اینجوری جوریه کسی چیزی رو گرفت بعد رد بکنه این نوع کلام یا زمانت از این در میاد یا فقط مجرد وجود رد مثل آیه مبارکه تا چه معنا کلام فردا ان شاء الله آیا در روایات ما از این نه شده یا نه, نه شده